حقایت. یکی را از ملوک مرضی حایل بود که اعادت ذکر آن نا کردن اولا تایفه حکمای یونان متفق شدند که مرین درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف بفرمود طلب کردند دهقان یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند، پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خوشنود گردانیدند و قاضی فتوا داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سرسوگ آسمان برآورد و تبسم کرد. ملک فرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت، ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشاه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت هتام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوا داد و سلطان مساله خیش اندر که من همی بیند به جز خدای عزوجل پناهی نمی بینم پیش که برآورم ز دستت فریاد هم پیش تو از دست تو گرخاهم داد سلطان را دل از این سخن به هم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت، حلا که من اولاتر است از خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت بدانی حال مور، همچه حال توست زیر پای پیل،